فصل 20 خانه پشت جبهه از وقتی به اسفهان آمده بودم تهیه خانه پشت جبهه یا خانه تکی عقب افتاده بود. اجازه نداشتیم بیش از این تهیه این خانه را که برای مواقع ضرب خانه تیمی یا مواقع استراری لازم بود عقب بیاندازیم. به خصوص برای رفقای دختر این ضرورت بیش از پسرها بود. رفقای پسر اگر جایی را نداشتند، توانستند در خرابهی به خوابند اما دخترها نیاز به خانهی مطمئن داشتند. نیما اتاقی داشت که دو هفته یک بار با انجا می رفت. قرار شد علی به تنهایی و من و پروین هم دوتایی دنبال خانهی بگردیم. بعد از مخفی شدن در خانه تکیه برخی رفقا چون رفیق پوران زندگی کرده بودم. بعد از ضربه هشت تیر سال پنجاه و پنج، چون جایی نداشتم و همراه رفیق پسری به خانه تکیش رفتم. او به صاحب خانه این طور کرده بود که در شهرستان کار می کند و های هفته به تهران می آید. وقتی مرا همراه خودش به اتاقش برد، صاحب خانه حرف رفیق را که گفته بود خواهرش هستم باور نکرد و با شک براندازم کرد. حتی آن شب دو بار در اتاق را زد و چیزی خواست. البته حق شک کند چرا که رفیق پسر سیاه چرده و شبیه مردم جنوب ایران بود و من سفید رو. تنها همان شب توانستم آنجا بمانم. رفیق پسر هم مجبور شدن خانه را پس بدهد. با پروین در کوچه پس کوچه ها به دنبال اتاق خالی می گشتیم و در خانه ها را می زدیم. روز سوم بود که به خانهای در نزدیکی فلکه خاجو رسیدیم. خانم موسنی در را به من باز کرد با دیدن سر و قیافه و طرز صحبت من به چای دعوت من کرد. از حیات گذشتیم راهروی باریکی را پشت سر گذاشته وارد اتاقی شدیم. سر تاقچه چشمم به آینهی با قاب زیبایی افتاد که عکسهایی به کنارش چسبیده بودند. حال و هوای خانه خانم جانم را داشت. برای پیرزن تعریف کردیم که سپاهی دانش هستیم و در دهات اطراف اسواهان درس می دهیم و اتاق را برای آخر هفته ها که به اسواهان می آییم می خواهیم. خانوم موسن داستان ما را که شنید گفت می همینجا بمونید. لازم نیست وسیله بخرید. همه چی تو خونه دارم. اتاق فرش شده ای را نشانمان داد که رخت در گوشه ای از آن روی هم انبار شده بودند. فکر کردم چی از این بهتر اتاقی برای پشت جبهه بدون کمترین خرج. همین فکر را پروین هم کرده بود. چرا که با خوشحالی قبول کرده اما بلافاصله فاصله پرسید مادر شما چرا تنها زندگی میکنید؟ بچه ها کجان؟ سر زندگی خودشونن. شوهرم من پونزده ساله که عمرش داده به شما. برای هفته بعد قرار گذاشتیم. از خانه که بیرون آمدیم پروین را در فکر دیدم. پرسیدم چیز مشکوکی دیدی؟ دلم برای پیرزن سوخت. ببین چقدر تنهاست که ما قریبه ها بهش دلگرمی میدیم. حسش درست بود. هفته بعد که آنجا رفتیم، چند جور غذا درست کرده و سفره را چیده بود. تخت ها را از اتاق بیرون برده و برایمان چند کلاه‌ها و تشک گذاشته بود. از دیدن این همه محبت متأثر شدم. زمان شام، از شوقی که از هفته قبل برای دیدن ما داشت، گفت: ما هم از دست مختش تعریف کردیم. ظرفها را که میشستیم از بچه‌هایش گفت، یکی در تبریز دانشجو بود و دیگری در تهران کار می‌کرد. پسر بزرگش در آمریکا بود. یکی از دخترها با دو در اصفهان خانه داشتند و به او سر می‌زدند. در عرض یکی دو ساعت با همه خانواده آشنا شدیم. وقتی مادر چای ریخت و کنارمان بر زمین نشست، پروین سر حرف را باز کرد. مادر جان پدر کیفوت کردند؟ مریض بودند؟ پروین آنچنان مهربانانه سوال کرد که مادر سفره دلش را راحت گشود. پونزده سالی میشه، یه روزی همینطوری که نشسته بود و حرف میزد، دیگه حرف نزد. اشکی را که گوشه چشمش جمع شده بود، پاک کرد و ادامه داد. خیلی با هم اخت بودیم، بچه که نبودند، تا وقتی اون بود، سر حال بودم. اینطوری منو نبینید خیلی خوشگل بودم از وقتی رفت مادر واقعا هم زیبا بود گونه های برجستش در کنار دو چال کنار لبها چشمان سیاهی که شیطنت جوانی هنوز در آنها موج می‌زد، حتی چروک های کنار دهانش به زیبایش می افزو. آدمی که در پیری زیباست به حتم در جوانی هم زیبا بوده است بچه ها چی سر میزنند دختر جون آدم وقتی جفتش بره دیگه هیچ کس جاشو نمیگیره به ندرت دیده بودم که زنها یا حتی مردها اینگونه از همسرشان صحبت کنند. همیشه عشق به بچه ها بود که مطرح میشد. سخن گفتن سریح از عشق به همسر در محدوده ممنوع باقی می ماند. سی سال با هم زندگی کردیم. نازوی تر از گل به من نگفت. خانومم صدام می کرد. اول برای من چای میریخت بعد برای خودش. صبح که بلند میشه چشمش به من که میافتاد می خانومم می خانومم شما که بازم خوشگلتر شدی یه رحمی به من پیرمرد بکن. ریز خندید سر پایین انداخت به اشخایش را پاک کرد. فکر نکنید این اشگاه از ناراحتیها ها نه، والا از خوشحالیه. همین خاطرات این سال منو زنده نگه داشته. شب که برای خواب کنار پروین دراز کشیدم او گفت چه حسی؟ آدم فقط تو کتابا اینطور طور چیزا رو میخونه. خوابم نمی برد. دست بر قلبم گذاشتم و حسی را که مادر به من داده بود مزه کردم. برخورد پروین در اعتماد مادر به ما تاثیر بسیاری داشت. در حیرت بودم که چطور سر صحبت را با این پیر زن باز کرد و دست بر نقطه اصلی دلش گذاشت. سعی کرده بودم با جارو کردن حیات و آب دادن گلها شستن ظرف و تمیز کردن آشپزخانه اعتماد مادر را جلب کنم اما پروین با کلماتش به دل او راه یافته بود. صبح نان تازه گرفته مشغول خوردن صبحانه بودیم که در حیات باز شد و دختر مادر با دو پسر بچه شیطان وارد شدند. دختر خیلی مهربان و سمیمی ما را تحویل گرفت و گفت مادرم با همین یه بار دیدن آشق شما شده نمیدونین چقدر پای تلفن تعریف کرد مشتاق شدم شما رو ببینم خب شماها تو کدوم ده سپایی هستید پروین داستان سپاهی بودن ما را کمی مفصلتر تعریف کردم ما سوال دختر مشخصتر بود منم سپاهی بودم تو ده چمگردان راستی مسئول بخش شما آقای نجفی نیست اگه بخواین میتونم رو بکنم کار سخت شده بود به این جاهای داستان فکر نکرده بودیم پروین توضیح داد که ما هنوز تقسیم نشده ایم و ده محل خدمت ما به زودی تعیین می شود دختر دیگر سوالی نکرد اما قانع هم نشد بیرون که آمدیم برای هر دوی ما روشن بود که دیگر نمی توانیم در این خانه بمانیم. اگر دختر سوال مشخص دیگری می کرد اگر با روابطی که داشت از مرکز سپاه دانش درباره ما سوال می کرد دستمان رو می شد باید دنبال خانه دیگری می گشتیم. وسط هفته وقتی تصمیم خود را به مادر گفتیم مانده بود که گریه کند. چند روزی طول کشید تا خانه در میدان کهنه نزدیک بازار پیدا کردیم. صاحب خانه پیرمردی بود که در قهو خانه در بازار کار می کرد. او با همسر پیر و نوی ده ساله زندگی می کرد. خانه حیات کوچکی داشت که چهار اتاق دور تا دورش بود. دو تایان برای اجاره بود که ما اتاق کوچکتر و ارزانتر را اجاره کردیم با کمی پول وسایل اتاق تکمیل شد لازم هم نبود درباره سپاهی بودنمان توضیح بدهیم پیرمرد از اینکه دو دختر درس خوانده و سپاهی هستیم هفته یک بار با آنجا می‌رویم اما اجاره کامل را می پردازیم بسیار راضی بود دو هفته یک بار با آنجا رفتیم. با زندگیشان قاطی شده بودیم. پیرمرد خوشحال بود که پروین با نوش که در دیکته و حساب تجدید شده است کار می کند. پیرزن هم خوشحال بود که من آمپول کرتونش را تزریق می کنم. می گفت درد آمپولی که من می زنم خیلی کمتر از وقتی است که آمپول زن می زند. اما من می دانستم که از این طریق پولی را که برای تزریق به درمانگاه می دهد زخیره می کند. چندی بعد اتاق دوم را هم به زن و شوهری که پسر کوچکی داشتند اجاره دادند مستجر تازه کارگر کارخانه هم بود درباره ما از صاحبخانه شنیده بود و علاقه بسیار و آشنایی نشان میداد همان هفته اول به شام دعوتمان کرد خانم شهوازی بود و خورشت قیمه درست کرده بود خورشت محبوب من اما با اولین قاشق که به دهان بردم زبانم از شدت تندی سوخت پرسیدم این چرا اینقدر تونده؟ با خنده جواب داد آخه فلفل و زرچوبه ای ما با هم قاطی هرچه بود نمیشد از خوردنش چشم بوشی. پروین از مرد کارگر درباره کارخانه و وضع کار پرسید. داداش حقوقش کافیه میرسه؟ حقوق حقوقو بدن کافیه اما الان سه ماهی که عقب انداختن. میگن کارخونه پول نداره. کارگرا میگن اگه سر این برج ندن اتصاب میکنه. پروین چنان راحت سر صحبت را با مرد کاریر باز کرده بود که مات مانده بودم گفتگو با هر قشری برایم راحت بود مگر با مردان جوان نگران بودم از گفتگوی دختری جوان با مردها برداشتی غلط شود میکوشیدم با زنها یا پیرمردها طرف شوم حس تحسینم نسبت به پروین باز هم بیشتر شد یه وقتی کاری نکنی اخراجت کنند اخراج واسه چی اضافه که نخواستم آخه میگن کارخونه نساجی هم نکنه همه رو بریزن بیرون چی؟ ای کارگر رو بریزن بیرون پس کی میخواد واسهشون کار کنه؟ گاهی هم پیرمرد صاحب خانه با مرد کارگر درگیر بحث میشد همین دیروز آجانا اومدن و دکونه مشبرام و بستن خودشم بردن میگن گرون فروشه بیخودی خودی میگن بابا همسایه کارگر دستش رو به سوی پیرمرد تکان داد و گفت چی چی بی خود میگن یا عمر این کاسبا مردمو چاپیدن حالا دولت داره حسابشون رو میرسه پیرمرد اخم کرد و ابرو در هم کشید خوشش نمی آمد که کارگر از بازاری ها بد بگوید گاهی که بحث میشد نگران میشدم که نکند پیرمرد عذر کارگر را بخواهد و بگوید از خانم برو یک بار همین نگرانی را بر زبان آوردم شما هم اینقدر سر, سر این بابای پیر نذارید یه دفعه میخوادا، خب میرم یه جای دیگه مگه مجانی اینجا نشستم آخر هفته‌های ما شده بود خبرگیری از بازار و کارخانه و گوش دادن به بحث‌های آن دو و البته یک وعده غذای خوشمزه به دلیل رفت و آمد بین اتاق وقت بیشتری را با پروین می‌گذراندم او بود که اغلب سر صحبت را باز می‌کرد و من اغلب موقعیت او را در تیم و احساسی را که نسبت به او داشتم فراموش میکردم. یک شب که کنار هم دراز کشیده بودیم گفت تو منو یاد رفیق مرزی احمدی اسکوئی میندازی جدی چرا تک موی را که بر صورتم افتاده بود پس زد نو دماغم را گرفت و پیچاند قیافه خشنی میگرفت آدم فکر می کرد که اون بی احساسه اما وقتی بهش نزدیک می شدی پر از عواطف بود داستانایی که نوشتر رو خوندی خیلی پر احساسه راجع به بچا زنا از نزدیک میشناختیش؟ از سوالی که کرده بودم پشیمان شدم پروین لحظه ای مکس کرد و به فکر رفت میدونی که شعرم میگفت توی یکی از اونا میگه من مادرم، من خواهرم، من همسری صادقم، من یک زنم زنی از دهکوره های مرده جنوب زنی که از آغاز با پای برهنه دویده است سر تا سر خاک تف کرده دشت ها را ازش چند تا داستانو که از رادیو میهم پرسان پخش شده بود شنیده بودم. پروین بلند شد و نشست و با هیجان گفت: یه بار دیدم به یه زنی گدا پول میداد. گفتم رفیق با پول که کار گدا درست نمیشه. گفت: زنای گدا فرق دارن. مردا بالاخره یه کاری پیدا میکنن اما زنا به خاطر هاشون حتی دنبال کارم نمیتونن بگردن. پروین در فکر بود یک باره گفت: از پشت پرده فکر میکردم تو تیپ دیگه باشی. هر چی نیما میگفت و باور نمیکردم با آمدن نام نیما قلبم به تپش افتاد پس او با پروین درباره من حرف زده بود دلم میخواست بدانم نیما به او چه گفته است اما از پرسش شرم داشتم پروین که چشم بر هم گذاشت به یاد گفته نیما درباره او افتادم شما دوتا خیلی به هم میایید سالها قبل وقتی چهارده ساله بودم دوستی داشتم به نام شراره که وقتی به خانه ما می آمد پهروی هم دراز میکشیدیم تا نیمه های شب از همه چیز می گفتیم. رابطه با پروین مرا به یاد آن دوست و احساس آن روزهایم من داخت کاش می توانستم با پروین راحت حرف بزنم و مجبور نباشم پیش از گفتن هر جملهای ای درباره تأثیر و نتایج آن محاسبه کنم یکی از شبها که پروین حرف میزد و با گوشه مویم بازی میکرد. حس کردم رابطه ما به جایی رسیده که می توانم از او درباره ماجرای رفیق بحمن سوال کنم به خود جورت داده پرسیدم تو جریان مرگ رفیق بحمن شنیدی؟ سکوت کرد رویش را برگردان و ساکت به سقف چشم دوخت هرچه منتظر شدم جوابی نداد فهمیدم که نمی خواهد در این بار حرفی بزند او مسئول بود؟ و حافظ منافع رهبری با همه نزدیکی عاطفی میان ما مرز حرفهای ما به اینجا خط می‌شد. های سیاسی تیم به جایی رسیده بود که بیشتر نگرانم می‌کرد تا کنج کاف. به جای تمرکز بر بحث به عواقب ایده ها فکر می‌کردم. نیما حرف‌هایی میزد که مو بر تنم سیخ می‌شد. خب اگه بیژن اینقدر کار سیاسی رو مهم و عملیات نظامی رو فقط در کنارش لازم میدونه و سازمان فقط به چند تا تیم عملیاتی نیاز داره که مسلح باشن و کار دیگه ای جز عملیات نکنند. بقیه تیم هم لازم نیست مسلح باشن. همینم باعث میشه تا ضربه نخورن. اولین بار بود که این حرف رو از اون میشنیدم. تعجب کردم. نمیدانستم خودش به این فکر رسیده یا با کسان دیگر هم بحث کرده است. رفیق. سال هاست که گروه های سیاسی به وجود میان به یه سال نرسیده لو میرن و نابود میشن اگر کار سیاسی میخواست حلال مشکلات باشه که رفقا به راحل مسلحانه نمیرسیدن مگه فراموش کردی چی شده که این چیزها رو نمیبینی؟ نیما لحن تند پروین را به دل نگرفت و ادامه داد قبول دارم فراموش که نکردم گروهها از بین میرفتن چون زنده به دست دشمن میافتادند ما اما سیانور داریم خودکشی نمیذاره تا کسی زنده دستگیر بشه. درست مثل الان با تندی گفتم تو با حزم سلاح شانس زنده موندن تو وقت درگیری رو به صفر می‌رسونی. نیما نگاهی به من انداخت. حس منفیم را درباره مرگ با سیانور میدانست پرسید: "به خطرایی که حمله سلاح داره فکر کن. چند بار پیش اومده که رفیقی از درگیری فرار کرده باشه؟ فکر کن تیه سلا واسه این همه رفیق چه هزینه داره؟" برای پولش باید بانک زد خطر رابطه با قاچاقچی و گیر افتادن و غیررم حساب کن تازه مگه ما تعالی چقدر از سلامون استفاده کردیم یه دفعه دو دفعه اگه مسلح نبودیم لازم نبودیم همه خونه تیمی داشته باشیم که میتونستیم بشه علنی ها زندگی کنیم سلاح که نباشه میشه راحتتر حرکت کرد چقدر گشتی‌ها به رفقا تو خیابون مشکوک شدن اگر پروین گفته‌های نیما را در دم رد میکرد. علی آنها را تعیید میکرد. خود رفیق حمید اشرف هم بعد از ضربات تشکیل تیمای آوانگارد رو پیشنهاد داده بود. برایم روشن بود که وقتی من و پروین به خانه تکی میرویم علی و نیما راحت درباره اینگونه مسائل با هم بحث میکنند. متاسف بودم که نمیتوانم در آن بحث ها شرکت کنم. حرفای نیما مرا نگران میکرد. لا حرفهای او جملاتی بود که با سوال های گذشته ما فرق داشت. تردید نسبت به کل مش سازمان را در خود داشت. ادامه این فکرهای نیما به کجا می رسید؟ امیدوارم که این سلحشوری ها در خردات و خردات و خردات تکرار شد. در اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریز ز گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریز ز کوه لال لاله سارم دل Oh, my جنگ ستاره داره جان جان یه جنگ ستاره داره یه جنگ ستاره داره جان جان یه جنگ ستاره داره اولت ستار بعدی اولت اغلانیت دولت استفاده از کاشناسان دولت استفاده از نهاده خواهد بود که ملت با پای مردی خودشون ها رو پای گذاری کردن نه که یه دولت رنمالی و کفبینی باشد نوشخنده نون دلش رو بگشون صداش چشم و یادش آهود وی جنگل تو و یادش جان جان جان تو یه جان جان جان, جان یه جنگ آسی تاره داره جان جان یه جنگ آسی تاره داره یه جنگ نزدیک قروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم